دلم مونده رو دستم هنوز ممتظر استم برم یا که دمونم آخه جوری خستم واسه دل بیقراره چشار گیرایی داره دلم مونده رو دستم چی میشه بگی آره بیا قلبم رو نشکن نگیر عشق تو از من همه دنیا رو گشتم نبود مثل تو اصلا آهای آرومه جونم نظار تنها بمونم بدون تو نمیشه نمیشه نمیتونه سیر عشق بیرو در واسی از دوری دلم حسی عاشق تو واساسی بیا بیا تو راه دستت آرامشه برق چشمم از خاقش قفل قلب تو و بش اینامون که میخوامش دوست دارم من دلم که شب و منجور به تو ومستم و تو مونده رو دستم هنوز ممتظر استم برم یا که بمونم آخه بد جوری خستم واسه دل بیقراره چشاد گیرایی داره دلم مونده رو دستم چی میشه بگی آره بیا قلبم و نشکن نگیر عشق تو از من همه دنیا رو گشتم نبود مثل تو اصلا آهای آرومه جونم نظر تنها بمونم بدون تو نمیشه نمیشه عشقم رو در واسیه از دوری دلم آسیه آشقه تو و از واسیه یا خوبم کن دستات آرام آرامشه برقه چشمام از خواهشه قفل قلب تو وابشه این همون که میخوام نشه دوست دارم من دل به چشان بستم و من به تو مابستم و تو هر جو بگی هستم و از دوری تو خستم و دوست دارم